در احوادیه با علی السخاوتی و آرش تاه قسمت اول بلغارستان معبد و شروع ماجرام سلام من علی السخاوتی هستم این اولین قسمت پادکست به راه بادی است. به راه بادی اسم این پادکست قرار باشه که من به همراه دوست خوبم آرش تاهر قره‌ذر بکنیم. امروز هفته می مطابق 17 اردیبهشت. 7 می میگم به خاطر اینکه من ایران نیستم و 17 اردیبهشت به خاطر اینکه آرش ایرانه و ما این رو روی اینترنت با هم دیگه داریم ضبط می‌کنیم. چند روز پیش من با آرش صحبت میکردم و قرار شد که یعنی یه ایدهی مطرح شد که این پادکست رو با هم همدیگه ضبط بکنیم و به نظر من خیلی ایدهی خوبیه آرش هم داره تمام سعیشو میکنه که این پادکست به بهترین شکل ممکن ضبط بشه آراش سعی جوری این به این بهترین و بهترین واقعا دیگه هیچ چیز نکرده که حالا به تمام تلاش خودش رو می‌کنه حالا امیدوارم زحمت ادیتش کم باشه واقعا یعنی امیدوارم یه جوری باشه من بتونم فقط اینو دانلود بکنم صدا رو بشستمون به هم دیگه منتشرش کنم منم آرش تو هستم قبل از این رادیو دال داشتم کار میکردم روش یعنی هنوزم دارم رو رادیو دال کار می‌کنم و تجو به لذت بخش بود ساختن پادکست از اون سمت با رقصخواب تیم یه مدتی در تماسم یه مدت ازشون خبره نبود آخرین باری که باهاش صحبت کردم یه سری اتفاقات خیلی خیلی عجیبی بنظر تو زندگیش افتاده بود و شنیدنش برام جالب بود این شد که پیش دادم با همدیگه دیگه بشینیم مراجعهشون صحبت بکنیم علی آقا یه کلیاتی بگو بگه آقا الان کجایی؟ تو تو کجایی؟ من چی تو خونه‌مونم خیلی جالبه یه جوون با سن سال من تو خونه مامان بابا منم من. تو دقیقاً جایی هستی که باید باشی دیگه, دیگه. واقعا یعنی واقعا این جوونه 22 اندیسال خونه ما واقعا یک وقت باشه شاید هم اونجا نباید باشی <تصفيق> ولی حالا فعلا هستی دیگه شاید هم بزودی که اونجا <تصفيق> نباشه حالا ببینیم چی میشه دیگه درد شما چه آره آره خبر تو کوجیه صدای سگمک آره میمن من توی مزرعه‌ام توی بلغارستان وسط جنگل‌های بلغارستان <تصفيق> <تصفيق> من فکر نمیکردم کسی بره بلغارستان یعنی اساساً نبودش که فقط جغرافیا جغرافی میدنیم مثلا یه محدوده یه جغرافی رو بهش میگن بلغارستان و اینکه الان چی؟, چی؟ بلغارستان خب چیم کنیم؟ همه کشور های محدوده جغرافی دیگه منطور ما جغرافی رو بعد یاد گرفتیم یعنی از آن جغرافی رو آدم باید حین سفر یاد بگیره وقتی واقعا داری از یه کشور یا یه شهر میری به شهر دیگه و اون موقع روی نقشه نگاه میکنی تازه میفهمیم مفهوم جغرافیا و مفهوم مرز و نمیدونم بیا یه منطقه یعنی چی پدیده های جغرافی هم همینطور مثلا وقتی توی کتاب می جنگل یا جلگه یا رودخونه اینا رو تو از پنجره اتوبوس یا از پنجره ماشین یا اصلا از نزدیکی دومتری نگاه نکنی به نظر من خیلی یاد نمیگیری من خودم رو خیلی یاد نگرفتم الانم به نظر اوکیه مثلا من هیفونا برای من محدود شده به کلاق و گنجش و موش یا درخت برای من محدود شده به کاج و اینا چیه برگشون شدید تو تهران زندگی می دارم زندگی می‌کنم <تصفح> سوالی که چی رو دارم از دست می دم اصلا چیزی رو از دست نمی هر سوالی که تو کلامی ات دست دادم باشه رو نظر من سوال خوبی نیست ام... نه اینترنت دارم می‌دونی من اپوش یا وان پوش سیستم قرار می‌گیرم که اینترنت در اساس کنم خونه‌م همین کجاست کم با طبیعت بیگانیم من واقعا تو طبیعت قرار می‌گیرم بعد یه مدتی یه حس ناخوشایند بهم دست می‌ده اولش جالبه برام آ اما بعد یه مدت احساس می‌کنم دو و آلودگی و سرسودا نیست یه چوریه واقعا میگم یعنی نمی‌تونم یه جایی که از تراکم آدم‌ها فشردگی کنید آدمو نچپیدن تو هم دیگه چه همش فضاای نباشه می مقدار حس بدی بهم دست می‌ده نمی‌دونم من جویشم واسین چج هستم برعکس یعنی من بیشتر از 20 تا آدم یه جا باشه استبعادی بهم دست میده. اینجا که من هستم کلان شاید 7 8 نفر زندگی میکنن به اضافه‌ی 17 تا اسب 20 20 خورده‌ی بز 11 تاشون بزغالان تازه این بهار به دنیا اومدن. خود بزاشا شاید 7 8 تا بیشتر نیستن. 8 9 تا سگ که سگای ولگرد و خیابونی بودن جمعشون کردن ازشون نگهداری میکنن یه دونه خوک سه چهار تا گربه یه لاک پوشت بعد چه تنبول زیستی بالایی درخت <تصفيق> و جنگل و مرتب و اینا دیگه یه دونه هم که از وسط وسط خونه ها رد میشه سوال اینه که اینا به تمدن دسترسی دارن یه جامعه متمدن بلغارستانن یا مثلا از دنیا که زدن تو کوه کمر یه حسه چیزیو دارن مثلا این آدمایی هستن از جامعه میکنن میرن بیرون بعد الان اینجایی که شما هستین مثلا با تمدن... بابا اینترنت واقعی هست یعنی به تمدن نزدیک دیگه بلغارستان کشور یه کشوری متمدنی یعنی اونجوری که تو ف... مثلا فکر میکردی نیست اگرچه مثلا هنوز کولی ها توی بلغارستان هستن خیلی معتقدن که اصلا منشأ کلییا بلغارستانه م. و کلی دیده میشه توی بلغارستان و به همون شکلی که یا جیپسی به کلمه انگلیسی رو بخوام استفاده بکنیم و به همون روش زندگی مثلا چند ساله یا چند هزار سالهشون هم زندگی میکنن تو جنگل منگلا خیلی با تمدان رابطه ای ندارن او. اینجوری که من شنیدم من خودم نهیدمشون ولی کسی هایی هستن که باشون صحبت کردم اینا دیدن و میدونن حالا سانی که شما اونجا و uh, ولی من اینجا چیکار میکنم بعد برگردم به 4 5 ماه قبل یا شاید به 7 ماه قبل uh, که طی فرایند نه چندان خوشایندی نه از خانومم جدا شدم uh, و سه 4 ماه بعدش تو ایران هیچ کاری نمیکردم. نه, نه اینکه مثلا قبلش خیلی کار خاصی میکردم ولی واقعا تو اون 3 4 ماه دیگه هیچ کاری نمیکردم. خونه مادرم میخوردم میخوابیدم تا اینکه به فکرم رسید که دیگه زیادی کاری امکان و سفر کنم راستش خونه من نصد به که تو خونه من بام اصلا اصلا بهتری دارم نه اینکه که بخواه شاید این سر سو استفاده باشه و که شما دارین توصیف میکنم نه میلیون ها نفری کاری رو می اصلا کاری بدی نیست نمی‌تونم ببینید این نظر خود آزادی عمل ازت میگیره دیگه حالا همین الان من بخوام خیلی مسالمتاً الان حالا اینکه خونه کسی نیست منتها اگه کسی خونه بود میگن این پسر چشه خلوچل داره و سر بلند با خودش رژیم همین چه مسائل صحبت میکنه این یه مقدار آزادی عمل ازت می‌گیره خب میتونی بهشون یه یکی با یه نفر دیگه صحبت می‌کنن فقط خب خیلی بچونه نمی‌دونم بعد باید توضیح بدی که مثلا پادکست به راهبادی یعنی چی اول من توضیح بدم پادکست با یعنی چی و <تصفيق> اصلا فایده زبط کردن و انتشار یه پادکست چی میتونه باشه آره من تجربی در خیلی موضوع سپوت بکنم توی همچین موضوعاتی اما در هر حال پس شما بعد سه چهار ما تصمیم گرفتید برید سفر آره ولی دنبال یه روشی بودم که سفر معمولی هم نباشه دیگه یعنی یه مدل دیگه ای سفر بکنم این بود که با یه مقدار سرس روی اینترنت یه زیب رو پیدا کردم به نام ورک که شما میتونی کار دافت بکنی در ازای اقامتی که جاهای مختلف بهت میدن تو میتونی کار بکنی و اونجا اقامت داشته باشی بدون اینکه نیاز داشته باشی پولی پرداخت بکنی. چه چولب یعنی میری یه جا مستقر میشی بر چه میدونم یه سری کار ساده و روتینی انجام میدی اونم جا, جا و غذا بهت میدن. کار آره کاره مختلفیه و مشخص هم هست یعنی روی این پروفایلی که اونا روی اون وبسایت دارن در حقیقت اونا هاست هستند میزبانم تو والنتیر تو داافتوطلب و مشخصم کردن که چه نوع کارایی دارن محیطشون چه جوریه کجاست؟ و در قبال اون کارا تو اقامت داری اونجا و غذا. خب این بود که من روز اول ژانویه ۲ 2010 که حدوددا ده دی ماه بود اگر اشتباه نکنم، رفتم آلمان، یه سه ماهی آلمان بودم سه جای مختلف که اونجا چیزی تجربه های مختلف بود دو جاش دو تا مزرعه بود توی دو تا روستا یه جاش هم یه دونه معبد بود توی یه دیگه یه جای دیگه آلمان تو آلمان معبد داریم ما <تص> <تص> این معابد، با... مشخصاً من اساساً منو رژیم هولوکاست و این جور چیزاست. فک کنم آلمانی خیلی نمیخواد که معبد مثلا معبد بشه و پودا میوخته. ما... نه این معبد هری کریشنا بود، معبد هندو بود. آره، یه سری آلمانیایی که به اون فرق معتقدان یا معبدی رو هانداخته بودن 30 40 سال قبل، خیلی هم جدید نبود. فکر کنم بیشتر از 40 سال بود که وجود داشت. اون چیکار میکنید تو معبد؟ Uh, توی معبد چی کار میکردیم کار من شستن ظرف فوتووش‌واشونه. یعنی به خاطر اینکه حالا زمستون سردی هم بود اونجا و خیلی هنوز کار مزرع و اینا شروع نشده بود، <تص> uh -huh. این بود که من توی آشپزخانه ظرف می‌شستم. ولی خب مثلا یه لب دیگه بود، یه پسر امریکایی بود که اونام شیش تا گاو بود که گاوهای رها شده بودن جمع کرده بودن ازشون نگهداری میکردن توی طویله ای اون پسره مثلا کارش این بود که طویله رو تمیز بکنه صبح به صبح. بهتر از این میدون اول کاری گفتین تو معابت کار میکنه مثلا تصوران بود هر روز میره مجسمه بودا رو اینطوری گرد و خاکشو میگیرید. واقعا یکی کارا همین بود. دی میگی؟ البته نه مجسمه بودا بخاطر اینکه این هندویزم با بودیسم فرق میکنه. خیلی اینو قاطی میکنن. خیلی هم. اصلاً یعنی من نمیده من واقعا انقدر دقیق نشتم توی موزیک هندویزم و بودیزم فرق میکنه آره خیلی فرق میکنه آره. آره این یه معبد یه یکی از شاخه های هندوه که یه بابای اتفاقا یه موومنت یه جنبشی رو شروع کرده 50 چ... چ... سال پیش یه مقدار بیشتر از پنجاه سال پیش هزار و و شست و خورده اگه سرش بکنی رو ایکیپیدیا میتونی پیدا بکنی این رو بنیان گذاری میکنه به نام International Society for Krishna Consciousness IS Khan یه همچین چیزی هست مخففش <esart> و بعد خیلی رشد میکنه الان بیشتر از 700 تا معبد در سراسر سر جهان دارن اینا خیلی خیلی سازمان مخفی شدن خیلی بزرگی <laughing> آکه پس شما تا یکی از زیرشاخه های اینا داشتیم فعالیت میکردید ما فقط اینا چند تا اشتباهی رو دیدم. آفرین. یعنی مثلا مثلا چه له کار کردن یه جوریه یعنی چیزی باعث می‌خواد مثلا بگی واجیه مثلا نمی‌خواد یه واجیه شدی حس بدی داشته باشه بعد بخواد یه واجیه دیگه برش استفاده بکنه بعد خرابش میکنه آره. اه... خب حالا پس این چه کار می‌کنه؟ مخصوص با حساسیتایی که تو ایران هست برای ایرانی‌ها مثلا به محض اینکه بگی مثلا تو این صوزمون داشتی فعالیت کردی، آدم تن و بدنش این هستش نه من دوستان از این جوش باید یه ذره برگردم قبلتر جای قبلی که بودم یه جای خیلی کوچیکی بود یه زن و شوهری داشتن یه مزرعه خیلی کوچیکی توی روستای خیلی خیلی کوچیکی یه جای خیلی پرت توی آلمان آلمان خیلی دور سابق آره خیلی دیگه افسرده من و یه داوطلب دیگه اونجا بودیم خیلی افسرده داشتیم می دیگه واقعا دنبال یه جای متفاوتی میگشتیم. اونجا چیکار می کردیم من ت... تسفاره منه که منتظر بودیم اونانا بمیرن اونجا نه نه طبیلی... ببین کاری که اونجا می شامل روشن کردن به اصلا کوره هیزومی بود برای آب گرم و شوفاژا گاز ندارم اگه؟ نه آه. اه، من،, من این سجایی که دیدم توی آلمان احتمالا بخش عمده از آلمان همینجوریه یه کوره های خیلی افیشنتی دارن که توش هیزوم می سوزنن مثل, کور... مثل شوفاژ خودمون میمونه ولی کورش هیزوم می و با یه مقدار کمی هیزوم کلی حرارت و آب گرم تولید میکنه و هم خونه رو گرم میکنه هم آب گرم برای شستشو اینا همون و اینا هست بعد رو شما بعد صبح اول وقت روشن بکنی بعد بعد که روشن کردی مثلا قلقونی‌ها داده دیگه توش هیزوم اضافه بکنی بعد بسته به سردی هوا و میزان آب گرمی که میخوای هر دو ساعتی مثلا باید اینو هیزومش رو تجدید بکنی. اگه مثلا خبر هم آب گرم باشه بعد قبلش مثلا هیزوم بریزی حواست باشه و البته خب اینا تانکر آب گرم هست با بندی خیلی خوب و صبح که اینو رو روشن میکنی بعد چند ساعت آب به اون درمونی مناسب میرسه و دیگه تا تو تو آخری شب به گرم هست میدونی وقتی همچین شریط یه همچین شریطی میدونم که دران اینقدر بهینه کار میکنن و انقدر فکر شده یه حسه سسولودنی به هم دست میدونی ما انقدر مشال اطلاف انرژی داریم ما اینجا یه اینجور کار دیگه دقیقا همینه دقیقا همینه ما اونجا اصلا قطر انرژی رو نه اصلا اینا از یه سال قبل چوب سال ب... هیزوم سال بعد میخرن یه جوری میچینن خیلی خیلی فکر شده و این هیزوم یک سال خشک میشه و سال بعد تو زمستون میسوزوننش یه انبار هیزوم برای یه خونه کوچیک، من فکر میکنم بیشتر از هزار 2000 دو هزار یورو آب میخوره تازه باز اونقدری که ما تو ایران 24 ساعته خونه رو گرم میکنیم اینقدر که باید پنجره باز بشه به هیچ مواه اونجوری نیست یعنی حتما باید با لباس گرم و اینا بخوابید آره من که دوستان تحریف میکرد که آقا اینا شبا کلن با کاپشن میخوابیدن بعد میگفتن چه میتونم اطلاف انرژی میشه و میتونه خودتو گرم کنی گرم کنی برای چه همچین چیزایی رو روشن کنیم آره ما انرژی رو بینیم حالا خیلی احساس می‌کنم برنامه تبلیغاتی شده برای سد که قدر انرژی رو بدونید. یکی از کارها روشن کردن این مشعل بود. اه اه تمیز کردن تپیله بوزا بود که من توی یکی از مطالبم توی ویبلاگم بهش اشاره کردم این اونجا بود. بعد از اینکه این, این کارو تموم میشد درست کردن غذا توی آشپزونه بود. حالا سبونه ناهار و اینا و بعد هر کدوم از ما یه پروژه داشتیم مطابقه پلنی، پلانی خیلی،, خیلی پلان خیلی سازماندهی و پلان برنامه دار بودیم توی اون خونه تقریبا هر دقیقه مشخص بود که هر کسی چیکار کار میکنه این الان کجا درد میدهرن؟ این،, این قبل از معبده یعنی این, این جای قبل از معبده که آها. اصلا داشتم میگفتم که چی شد که من رفتم اون معبد امه. آره به خاطر این کاری که اونجا کردم من و یه دافتالب دیگه که یه دختری بود از انگلستان دیگه تو مرز افسردگی بودیم دنبال یه آلترناتیوی میگشتیم یه معبدی پیدا کردیم فکر کردیم که خب این میتونه یه آلترناتیوی باشه اونجا مثلا میتونیم یکم مدیتیشن کنیم و به زندگیمون فکر بکنیم بر... یعنی برداشت منم همین بود که مثلا یه معبد بودیستی که اینا خیلی مدیتیشن انجام میدن و جایی هست برای تعمل در وای زندگی <تصفيق> با رفت زرف می شستید با این برداشت ما مثلا 700 کیلومتر از شمال شرقی آلمان رفتیم به جنوب غربی آلمان نه زرف شستنه مسئله نبود اصلا زرف شستنه ساده ترین قسمت کار بود چون اینا یه ای خیلی مجهزی داشتن مثلا با 5 تا سینک که اونجایی که من زحف شدم دو تا سینک بزرگ صنعتی کنار هم بود آب فشار اصلا کاملاً طراحی شده بود برای این کار. اصلاً اصلاً سختی نبود. آره. خب سختی کار این بود که اینا از ساعت 3 و نیم صبح پا می شدن و شروع می‌کردن به آواز خوندن با سر و صدا و منا... یعنی خودشون میگن چند نمی‌دونم چندین به فارسی چی میشه؟ نه میدونم دو دعا نیست یه جور زمزمه میکنن نمیدونم ب... ولی با صدای بلند بعد <تصفح> تبل داشتن و دو سه جور عدوات سنج داشتن و اینا رو میکوبیدن از ساعت چهار صبح شروع میشود این چالیم شد توی معبده یه چند نفر بودن که اومده بودن اونجا و کارشون دعا نیایش بود یه کامیونیتی بود 20 نفر تقریبا اونجا زندگی می کردن متشکلت چند نفر خانواده چند تو مجردی که دائم اونجا ساکن بودن و یه سری راهبی که می و می اومدن یعنی کاملا متغیر بودن یه میرفتن یه ما دوم ها می یه معبد دیگه یه جای دیگه جزو برنامه یه سیر سیروس حدوکشون بود <متحن> ولی مثلا در هر زمانی حدود 20 نفر جز اعضای اون فرقه اونجا ساکن بودن. سال می کنید اعضای اون فرقه چکارا می کردن؟ عرض می کنم از ساعت سه و نیم شدن دوش می گرفتن آماده آماد لباس های تمیز می از ساعت چهار رقص و پایکوبی و سنا چندتینگ شروع می شد دنس و چندتشون از چهار صبح شروع می شد و چون من جایی که میخوابیدن خوابیدم دقیقا زیر سالن اصلی معبد راقش شده بود اینکه صدا کاملا به گوش میرسید دیگه و اصولا هر کاری که میکردن اینا خیلی خیلی پر نویز بود خیلی پر سر و صدا بود. یه لایف که زندگی روزمره است، کشاورزی میکنن مشکلات روزمره مهمون سرو دارن. هر،, هر کاری که روتین زندگیه دیگه به اضافه اینکه یه آشپزخانه و سالن غذاخوری مشترک داشتن که غذا یه ذره عجیب غریب بود یعنی Uh, اه, اه, یه, یکی از راهبای خاص که تعلیم دیده بود و تحت شرایط خاصی از نظافت و پاکیزه لباس و, و همینطور خداگاهی بود اه, این میتونه ساشبزی بکنه بقیه انه... یعنی نمیتونه ساشبزی سا بکنه؟ ün, هر, کسی, هر کسی نمیتونه ساشبزی بکنه اه, این, این در حقیقت سراشبز بود یکی دو تا راهب دیگه اه, کمکش میکردن توش بست کنه منم دیگه مثلا این اواخر این اجازه رو پیدا کرده بودم که کمک کنم در حد مثلا سیب زمینی پوست کردن و اینا این شروع میکرد از ساعت مثلا فکر میکنم ده دهانیم شروع کرد به آشپزی کردن تقریبا هم یه منوی مشخصی بود آشپزی میکرد حوله هش ساعت دوازده گشته نکنم پختن غذا تموم می شد هر چیزی که ق... هر غذایی که پخته بوده توی ظرف کوچیک میریخ یه یه سمپلی مقدار کمی ازش و توی سینی این باید در حقیقت آفر می شد به خدا توی معبد در حقیقت پیشکش خدا می شد اینا غذا رو پیشکش کردن به خداره درکس باشه؟؟ <تصفيق> حضرت مریم و این شیزه چیزا از اون مراقضا میرسیدش رسیدهش نمیزدم چجوری باید بشه ولی اونجا اینجوری بود یه سینی خلاصه یکی از راهبایی که تو آشپسخونه کمک میکرد آشپسخونه تبقه پایین بود دیگه این سینی رو می توی معبد یه یروپی سریقه اونجا میموند و بعد بر می دو به همراه بقیه قضاها غذاها کشیده می شد توی ظرفهایی که روی میز مثل سلف سرویس توی سالن غذاخوری قرار می گرفت و ساعت دو و نیم ناهار خوردن شروع می شد صبحونم یه داستانی شبیه همین داشت ما صوبونه رو من نبودم که ببینم به اینکه که آشپزی که صوبونه رو درست میکرد خیلی صبح زود کارشو شروع می کرد شما به شما اصلا این غذا میدادن یعنی شما میتونستید غذا بخورید از این غذا که اینقدر دنگ و فنگ درست میشه من اساس میکنم اصلا مخصوص نه <تصفح> نه نه ما همون غذا می خوردیم تو همون سالن و یه روبروی آشپزونه یه یه اتاقی بود که از اونجا شما یه سینی مثل این سینیای ف... استیلی هست که توش چند تا جا داره آره،, آره. اره از اونای هر که یه دونه با یه دونه قاشق برمیداشت و برای خودش غذا میکشید نقطه فنیش فقط این بود که شما اگر بعد از کشیدن غذاتو غذاب، میخوردی و میخواستی دوباره برای خودت بیشتر غذا بکشی باید حتما میرفتی و دهنتو و دستتو میشستی و روی این مسئله خیلی اساس بودن آره اگر مثلا یه داوطلب جدیدی اینو نمیدونست اس و مثلا بدون اینکه این کارو بکنه میرفت به سمت میز سلف سرویس سه چهار نفر رو برق میگرفت و بهش هشدارهای لازمو میدادن اوکی رو نظافت حساس بودن به نظر آره به خاطر اینکه معتقد بودن شما اگر کارمای بدی داری در وجودت این ممکنه که به اون غذایی که دیگران ازش استفاده میکنن منتقل بشه به خاطر همین شما با ش دست و دهنت این کار م... نمیدونن من واقعا نمیدونم تومثل اونجا منفق باشین با کسی؟ آره با چند تاشون صحبت کردم ولی کلا هیچ کدومشون دوست نداشتن خارج از چارچوب هر که صحبتی بکنن. توی اون چارچوب ال مشاالله میتونستی باشون صحبت بکنی. ولی به محض اینکه مثلا صحبت خارج از اون کشیده میشد تمایلی نداشتند. پوف چی می نفر زندگیش این طوری خی... خیلی اکستریم بود یعنی شما فکرم مثلا ساعت سه صبح تا هشت نوع شب که می خوابیدن و بعد اینا یه وردی دارن که شوز... شونزده کلمه است اگه یادم نرفته باشه اینجوری بود هری کریشنا، هری کریشنا،, کریشنا، کریشنا، کریشنا، هری هری هری راما، هری راما، راما، راما، هری هری این, این ورد رو اینا یک میلیون بار در روز اه اه <تصفيق> یعنی اصلا حسابش از رفت در میره و بعد مثلا من که توی آشپزخونه کار میکردم یه, با یه،, یه سیستم صوتی خیلی قوی اونجا بود از مثلا مثل مدده های ما از مدده های مختلف این رو میذاشتن ولی خب مدده اونو اونا با ساز و ایناست دیگه <تصفيق> و با صدای بلند این پخش میشد. گهگوداری هم مثلا یه نفر موزه می کرد و این با صدای بلند مثلا از سه ساعت اینو من 3 ساعتی مجبور بودم گوش بدم. به آلمانی بود؟ نه نه با انگلیسی. به انگلیسی. چون اینا در حقیقت قطبشون هنده و همه چی از هند وارد میشه. مثلا راهبای کله گندهشون تو هندن و موعظه‌ای مثلا دست اول خیلی هات از هند میاد یا مددهی های خیلی هات از هند میاد یه جور ترندی داره مثلا چی می‌دونم مثل یه قطب راک جهانی یا قطب پاک آله، جهانی آله برای برای جوری برای مثلا یه،, یه کسی هست یه گروهی هست مثلا تو هند که الان خیلی خیلی پاپولر مثلا اون دوره مثل آره آره موزه جدیدش رو دانلود میکنن مثلا میشه سنگی یوتیوبش رو من همینطوری دا دارم چرت و میگم پا به پای من جلو میان. آره واقعا همین جوریه واقعا این جوریه اصلا شک نکن. خب سوال که یه نفر چطوری زندگیش به اینجا کشیده میشه که میادی همچین کارایی میکنه؟ ببین اتفاقا اولین چیزی رو که دونا دوست داشتن از زندگی خودشون به تو بگن جواب همین سوال بود مثلا که مثلا من داشتم فلان شهر کار میکردم خیلی هم پول درمی آوردم یا اینجوری بود و احساس کردم که خیلی بیمعناس و همه چیز هیچ معنی نداره خیلی پوچه و بعد با هریکی کریشنا آشنا شدم یک, یک،, یک،, یک کار, یک کار دیگه هم که میکنن تبلیغ. یعنی تبلیغ رو خیلی جدی میگیرن دلیلی هم که اینقدر رشد کردند و هفت تا معبد الان دارن تبلیغه یعنی یک از وظایف راهب اینه که اینا میرن توی شهرهای مختلف کتاب و سیدی و اینا پخش میکنن و هریکی رو تبلیغ میکنن قضا میدن یکی دیگه از کارهایی که میکنم قضا یعنی همین چیزی که دارن و سیستم آشباسبونهی که دارن رو ستاب میکنن جاهای مختلف و قضای رایگان میدن به مردم توی فستیواله تو جاهایی که مردم زیاد جمعن من نمیفهم اینا چی رو تبلیغ میکنن مثلا هی بما به پیوندید و هیچ کاری نکنید اصلا من نمیفهم تبلیغ چیه چی رو میفروشن به فرقه ما فرقه موفق باشم چاله <تصفيق> آلمان تو آلمان دارن یه چی کار میکنن من چند پیش داشتم یه پادکست گوش میدادم یه پادکستی به اسم Terrible Thanks for Asking افتضاح مرسی که پرسیدی بعد یکی از همینهایی بودن که توی همین فضاها طرف بزرگش بود یه دختر 26 ساله بود بینا ویتنس میگفتن شاهد بعد تعریف میکرد دقیق من اسم فرقش متوجه نشدم چطوره متو میگفتش که ما حتی خون نمیتونستیم بقیه مبعیانه یعنی مثلا انتقال خون در نظر اینها کار خیلی بدی بود نمیدونم حرام ترش بود بعد باهم میگفت تازه سرطان گرفته بود و دیگه مثلا طرف به همینجوی مرسی با خاطرش میخوند کالندو خودت تاریخ میگام من چقدر شک کرده بودم و این چون واسه و من احساس کردم نمی یه جورایی چه همچین فاز یعنی زندگی تو بکن ببین اینا رو بعد خیلی به نظر من از سطح یعنی چجوری بگم خیلی در سطح مایکرو از سطح فردی نگاه بکنی که اینا چه افرادی و چجوری دارن توی سیستم خیلی بزرگی استفاده میشن اینا اینا هایی که مثلا توشون کسایی هستن که معتاد بودن یا کسایی بودن که به نوعی از جامعه رانده شدن مشکلات روانی خیلی حاد داشتن و بعد یه یه مکان امنی رو پیدا کردن که در یه به صلاح منطقه حفاظت شده خیلی ایمنی زندگی بکنن و تنها کاری که لازمه اینه که اون ورد بخونن و مناسک مذهبیشون رو شرکت بکنن نمیابدارن مثلا توی کارهای روتینه چه امیدونم کشاورزی و خونه و آشوازی اینا کمک بکنن اگه کمکم نکنن خیلی اتفاقی نمیفته کسی بهشون سخت نمیگیره بشه یالت تبعید خ خودخواسته... فرار به, به،, به یه جای خیلی امنیه دیگه فرار به یه جای خیلی امنیه <تصفح> از, یه، از یه بود من اونجا در جواب به همین تیپ سوالایی که داری یه کتابی که خیلی وقت بود داشتم و نخونده بودمش رو شروع کم به خوندن یه،, یه کتابی به نام Confession of an Atheist Buddhist پرجمه شاید بشه مثلا اعتراف یه بودایی بی خدا یه همچین چیزی نویسنده کتاب که اگه اشتباه نکردم اسمش استفن یه انگلیسیه که در اون دهه 6070 که اون موومنت های هیپیگری و آلترناتیو فیدو کردن خیلی داغ بوده، پا میشه از نمام انگلیس از اسکاتلند میره به هند، از ایرانم رد میشه اتفاقا از مشهد رد میشه، حرم امام رضوان فکر کنم میبینه. یه مقدار مثلا اینکه چند روزی اون خاطراتش هم نوشته با چندتا ایرانی هم صحبت میکنه. از ایران و پاکستان و اینا رد میشه خودش به هند میرسونه و از پیروان دالائی لاما میشه که به دلیل اینکه اینا توی تبت زندگی میکرد اه اه اه توی هند زندگی میکردن اینا از تبت رانده شده بودن یه جایی اون بالای هند اسمش یادم نمیاد یه جایی به اینا داده بودن اونجا زندگی میکردن 10 15 سال این خیلی هم به مراتب بالای رشد میکنه توی اون فرقه اینا بودارین. ولی خب تمرینی که میکنن و تضادایی که پیدا کرده و توی این کتابش نوشته خیلی شبیه تضادایی که من توی این جامعه پیدا کردم. مثلا اعتقاد خیلی سفت و سختی که به تناسخ دارن. اینا هم اعتقاد دارن خیلی شدید، خیلی شدید و معتقدن که مثلا شما اینقدر به دنیا می و می میری و به دنیا می تا به رستگاری برسی و روحت پاکیزه بشه همچین چیزی. و تمام تلاشی هم که دارم می کنن با این برت بوندن و مثلا غذای گوش نخوردن و نمیدونم محدود کردن رابطه جنسیشون به ازدواج و هر, هر کار قمار نکردن و این, این چهار تا اصلشونه می و و و و و دونم تناسخ برای به یعنی این آخر... من ندانم تناسخه به نظرم خیلی مشکل داره ما دیویس سال قرب کلا مردم مردم کور زمین دیویس میلون نفر بودن اینه که به تناسخه اعتقاد دارن این روغای اضافی از کجور اومده یعنی خب یعنی یکم کم بهش کنی روغای اضافی کلا سرشم ما هفتش چی بودم مثلا یه میلیون سال پیش چند تا مگه آدم بودن این بقیه روحا کجا اومدن مثلا یه نفر شده چند تا نمیدنم خودت من بچلرم وارد میکنه به این ایده و به نظر منم خیلی درست میاد اینه که هر برداشتی که ما از سپیرچالیتی یا ماده ماتریال داریم وابستست به ماده یعنی درک ما و خداگاهی ما و شعور ما کاملا در هم است به مادیت ما ولی اینا, اینا این دوتا رو از هم دیگه جدا میکنن کاملا و میگن که یه چیزی بدون وابستگی از ماده وجود داره که وقتی ما میمیریم میره مثلا یه جای دیگه تناسخ پیدا میکنه یا روسخ پیدا میکنه هر چیزی ولی خب سوال این بود که چجوری میشه یه آدمی گرایش به بلنده بلنده یه نقطه ضعفی داره دیگه از زندگیش خسته شده از کار کردن خسته شده از جامعه سرمایهداری خسته شده از رابطه و زنش خسته شده و بریده چیزی بیشتر از خسته شدن بریده دنبال یه جای امنی میگرده یه جایی میخواد که فرار بکنه جانمی دنبال سادگی میگرده نقطه که فهم آره من فقط امدوارم یه نفر از این طرفداره این چیزی که هست پادکستو گوش ندارم بچه من چرا گوش بده <تصحیح> خوبه که گوش بده شون من <تصحیح> هر چقدر سر <سن تصحیح> <کردم تصحیح> <تصحیح> اونجا نقطه نظرات مخالفم و بهشون منتقل کنم گوش نکردم یعنی تمایلی نداشتن و منم احترام میذاشتم به خودی که من تو خونه اونا بودم و من نرفته بودم اونجا که مثلا زیر سوال ببرم اعتقادات اونا رو چه بودم اونجا که ببینم اونا چیکار میکنن، زندگیشونو زندگی بکنم. مثلا یکی دو بارم ساعت 4 صبح پا شدم رفتم <رحیم> تو معبد ببینم چیکار میکنن و توی معبدم مثلا روتینی اونا رو انجام میدادم. سالی سوالی بپرسم، یکم برای تجربه کردم، من نیمه احساس کنم مثلا واقعا من تو سی فرصت برام تجربه <تصفح> بکنم. <تصفح> بعدش <تصفح> دیگه <تصفح> باید برسم به زندگی و چه میدونن پولدار بیارم، خونه‌مو رو دوتا بکنم و بعدش پول جمع کنم بعدم برم سفر و یه مقدار ببین تا... بذار من سوالتو جواب ندم سوال تو باید چیزی که اینجا چند روز پیش دیدم جواب بدم چون به نوعی همین سوالت برای من بود یعنی مثلا اگه اختلاف سنی تو منو در نظر بگیریم همین اختلاف ام. سنی برای منو یه... یه آقای اومد اینجا چند روز پیش که ند... کارش نرجاری ساختمونه نجاری ساختمون با نجاری البته نجاری مبلمان و کرده ولی دوباره برگشته نجاری ساختمون بهش میگن فریمینگ یا تیمبر فریمینگ جایی که خونه با چوب میسازن یه نجاری چارچوب خونه و سازه خونه رو با چوب می و بعد خونه تکمیل میشه این کارشونه این آقا 60 سالشه و ایرلندیه با صحبت میکنم میگفتم خب تو مثلا احساس عدم امنیت و آینده و اینا نمی کنی؟ این, این سال قبل از طریق همین وبسایتی سایتی که من اینجا رو پیدا کردم اینجا رو پیدا میکنه و میاد اینجا الان دیگه تقریبا میشه گفتش که به چند ماهی که به دلایل شخصی نبوده اینجا یکی از ساکنین این کامیونیتی محسوب میشه جو اوزی از این خانواده است و باز دوباره اگه بخوام یه مقدار از رو جواب بدم برای اینکه مثلا بتونه بیاد اینجا وسایل مثلا نجاری شد مجبور شده بفروشه که مثلا پول جور کنه بتونه سفر بکنه و خرجه رو در بیاره مجرده نه و 5 تا بچه داره مثلا قصیدم چند بار ازدواج کرده ولی الان مجرده الان الان کسی باهاش نیست غالبا حالا جدا شده یا نمیدونم هر بلایی که سر زنش اومده الان مجردی زندگی میکنه ولی نفرسیدم من ازش پنج تا بچه داره که گفت سه تاشمال مال خودشن دو تاشمال مال خودش نیست. و در ادامه گفت البته اگه بدونی منظورم چیه که من گفتم نه نمیدونم منظورت چیه که گفت آره یه خانومی بچه میخواست من اهدا کردم اسپرممو بهشون دو دوتام از اون بچه داره. و بعد همینجوری صحبت می‌کردیم گفتم خب به حال دغدغه آینده و اینا چی گفت نه ندارم تا زمانی که زندم من کار میکنم هر وقتم نتونم کار بکنم خب میرم تو جنگلی جایی یکی دو روز بعدش هم میمیرم دیگه یعنی یه همچین دیدگاه نسبت به زندگی داره صبح که پا میشه قبل از اینکه از اتاق یعنی لباساشو که میپوشه کمربند کارش هم که بهش میتر و میداد و نمیدونم وسایل نجاریش آویزونه میبنده تا شب که بخواد بخوابه اون کمربند رو از کمرش باز نمیکنه. و بچه پیشش هم پیشش نیستن چطوریه؟ بچه اینجا که نیستن نه بچه هاش نه بچه هاش پنش مونن میدونم مثلا سر میمیزنن سلره همی <تصفيق> چیزی طبیه مثلا در مورد یکیشون گفت یکی از پسراش که الان خب اونم ازدواج کرده یه بچه کوچیک داره میگفت مثلا مقام سیزده دوچرخه سواری توی جهان داشت دوچرخه سواری هرفهی بود بعد که دیگه ورزش و ای رو گذاشت کنار شروع کرد به تولید لباس‌های های چرخ سواری الان یه شرکتی داره و بیزنس دوره خیلی شدید دنبال پول در آوردن و اون تیپ زندگی کردن و گفت خاطر همین میگم مثلا حرف مشترکی با همدیگه نداریم بزنیم و بعد من عذر پرسیدم تو همیشه اینجوری بودی یا تغییر کردی از یه جایی به بعد گفتم من همیشه اینجوری بودم اون طرف دوباره اون طرف تیف یه دختر فرانسوی اینجاست یه یه ماه خردی یه روز یه دو روز بعد از من اومد فردا داره میره اینجا این مثلا 22 3 سالشه و برخلاف مثلا فشار خانوادهش که میگن کار چی میشه و اینا میگه من فعلا نمیخوام کار بکنم چرا کار کنم اینه که هی داره عقب میندازه شروع کرده اون داره شروع کردن به کار عقب میندازه چند سالی که داره دافتالبی همینجوری میچرخه و باهاش که صحبت کنی شاید به اندازی مثلا یه یه آدم 40 ساله تجربه داره یه دختر 22 23 ساله تنها اروپا رو میگرده نه تنها اروپا اه، اه، کانادا هم رفته بوده آخه اینی که گفتین سیر و سفر های شما یکی ای از این یه لاکچریه که محسوب میشه شما دارید و فکر کنم پاسپورت ایران که جواب نمیده بخوای هر کاری بکنید لزوم اینجوری نیستم من من آخرین باری که داشتم به د... یه دلیلی داشتم تحقیق می‌کردم فکر میکنم ایرانیا با پاسپورت ایرانی بی... سی سی و خورده کشور میتونن بدون ویزا سفر کنن به اضافه اینکه خب خیلی کشورها ها مثل همین بلغارستان روسیه یا خیلی کشور دیگه گرفتن ویزاش خیلی کار سختی هم نیست برای ایرانی ها زمان آرمان رو جورش بکنیم کم کم بعد رفتیم معبده و آره دلیل این دلیل این این, این معبد افسانمون که دنبال یه جای الटरनेटیو و آرومی میگشتم عادت یعنی حداقل من اینجوری بودم که یه ذره مدیتیت کنم. خیلی دغدغه روتین آلمانی مثلا ساعت هفت صبح تا شیشه عصر رو نداشته باشیم محیط یه ذره باسر باشه، بیشتر از دو تا آدم باشن که دائما تو صورت آدمن. همه چیز تو این معبد محقق شد بجز اون سکوتش. یعنی اینقدر سر و صدا بود در ساعت 4 صبح و همه جا این آهنگ هری کریشنا پخش می‌شد که دیگه و منم نیتم نبود که بیشتر از یه ماه اونجا بمونم بزوفن که ویزامم تموم شد توی شنگن و بعد از آلمان و کلاً از شنگن میومدان بیرون این بود که دیگه با اون معبدم خدافیی کردیم کردم بعد از یه ماه و اومدم بلغارستان که خارج از شنگن چطور تا من با اتوبوس از اون شهری که من نزدیک اون معبد بود تقریبا 24 ساعت تو راه بودم تا برسم سوفیه که پایتخت بلغارستانه البته دلیل 24 ساعتش هم این بود که 13 14 ساعت بیشتر را نبود شاید 16 ساعت آره 16 ساعت بیشتر را نبود ولی 7 8 ساعت توی مرز دو تا مرز دیگه یه مرز مدارستان به سربرستان گشت و هنگام خیلی معطل شدیم چون از شنگن داشتیم وارد یک کشور اپتایی شنگن می شدیم و بعد دوباره از مرز سربرستان به بلغارستان هم خیلی معطلی داشتیم چون همه باید از اتوبوس یا ماشینشون پیاده می شدن وارد یه سالن می شدن که ویزا یا کارت یا پاسپورتشون چک بشه از اون ور بیان بیرون تک تکیم مثل یه اوارزی فکر بکن که ویزام داره چک میشه توش دیگه. توی کارت پیدا بر همین اونجا دیگه من, آره من همه جاهایی که پیدا میکنم روی اون وبسایت پیدا میکنم تقریبا همه کشور شما میتونی اونجا یه میزبان مختلفی رو پیدا بکنی که کارهای مختلفی دارن از نگهداری بچه بگیر تا کار تو مزرعه نگهداری حیوان کار ساختمونی عمدتا این ت hmm. کار توی هتل هاستل مسافر خونه نمیدونم اینجور کارام هست. حالا دلیل خاصی داشت بلوار انتخاب کردید یا یعنی اینکه دلیل خاصی نداشت شاید دلیل اولش این بود که خارج از شنگنه و من میتونستم با اتوبوس بهش سفر بکنم و بعدم این که پروژه های جالبی توش پیدا میشد. من نمیدونستم اینقدر ت... طبیعت جالبی داره و اینقدر کشور خوبیه. من من واقعا این این حد از شناخت نداشتم کشور بی‌نظیر بلغارستان من هیچ چی ازش نمی‌دونستم. والله چه اصلا خیلی جالبه. من اصلا بلغارستان میگم هیچ تصوری نسبت بهش ندارم. حس میکنم چنگیزخان مغل مثلا از اونجا رد شده بعد دیگه از اون زمان خراب شده. شرم‌آوره که ما در مورد بلغارستان چیزی نمی‌دونیم به خاطر اینکه خیلی هم شباهت های فرهنگی با ما دارن. خیلی بیشتر از اون کندی مثلا ت. غذاها و شیرینی‌های شبیه به همی که من بین ایران و بلغارستان تا به اینجا پیدا کردم خیلی زیاد بوده. از لحاظ فرهنگی و رفتاری هم خیلی شبیه هم. توی اروپای شرقی. آره دیگه اینجا اروپای شرقی محسوب میشه. جز بولو که شرق بوده جز زمان کمونیستی. خیلی از ساختمون‌های کمونیستی و مثلا همین شهری که نزدیک اینجا که من هستم هست یه جامعه کارخونی خیلی بزرگ که زمان کمونیستی ایجاد شده بوده برای تولید یونیفرم و نیمکت مدرسه ها اصلا یونیفرم مدرسه های کل بلغارستان اینجا تولید می شده بعد که دیگه کمونیسم فروپاشی میشه، اینا همه خالی و توش جنگل داره میگیره گیرتش و همه چی تغییر پیدا کرده دیگه چه فضایی یا مثلا یه مجتمع بزرگی بوده برای مثل مثلا تربیت معلم ما معلم های کل اینجا تعلیم میدیدن. برای اینکه مثلا اشتغالزایی ای بکنن برای مردم یه ای کارخونه های بزرگی می زدن که البته به نظر میاد که ما خیلی ازشون الهام گرفتیم و هنوزم به اون درد مبتلا هستیم به جای که مثلا به صنعت و سنعت دستی لوکال و فرهنگ لوکال به پردازن, اه, یه سنتی رو وارد میکردن و مثلا به امید که چل هزار نفر رو اونجا براشون اشتغال زایی بکنن و خب این در طولانی مدت نمیتونست کار بکنه حالا <تصفيق> اونجا مردمش چطوری یعنی که داره حسن رستای بودن دارم حالا یه انرژی رستاییه ببین خیلی به طبیعت نزدیکن خیلی حالت روستایی داره به خاطر اینکه پول خیلی زیاد نیست تو دست و بال مردم چه مثلا مثل هفته سال یا شد 50 سال قبل ایران میمونه پول خیلی تو دست و بال مردم نیست به خاطر همین مردم تا جایی که میتونن باید یه باخشهی داشته باشن تا حدودی غذای خودشون رو تولید بکنن خیلی هر کسی نمیتونه یه خونه جدید بسازه به خاطر همین تا جایی که میشده میشده خونه ها رو حفظ کردن مثل یه خونه که قرارمو تو صحبت می کنم 200 سال قدمت داره، باسازی شده تو جایی که میشده شده. 200 سال. ما الان مردمش راضین، ناراضین، چطوریه؟ کوین وظیقه هست. اه. اوزی ماشو به نظر بهتره با این تفاصلی چه بگیریم؟ می با چی مقایسه بکنی؟ اگه با ایران ایران مقایسه بکنی آره راضین. ها چطوری راضین؟ اه. اپ... ببین بخوا... عضو, عضو اتحادیه اروپان راحت توی اروپا رفت آمد میکنن بچه هاشون راحت میرن کشوره حالا اروپای غربی تحصیل میکنن کار میکنن یا خودشون مثلا اگه سه چار ما اونجا کار بکنن راحت میتونن بقیه سال توی اینجا زندگی بکنن بخواد اینکه خیلی هزینه ها اینجا پایین ارزون و بعد هیچ محدودیت... محدودیت هایی که ما داریم ندارن دیگه از اون،, از اون بود مشکلات رو ندارم و بعد طبیعت قنی و بی داره و جمعیت کم یعنی 6-7 جمعیت جنگل های بکر دست نخورده بارندگی زیاد خاک آسلخیز این یعنی تب... از طبیعتش میگه شما تو ایران هم زیاد تو گشته بودیم به نظرم یعنی آره. میخواهم نمیتونیم مقایسه بکنیم من خارج, خارج من دوستا میرن خارج عکس میگیرن به با همون گوشی که تو ایران با من یه عکس گرفته بود با همون گوشی میره عکس میگیره اصلا نمیدونم چرا عکسش هیچ جور دیگه نمیری کیفیت یه چیز دیگه است یعنی من باهوش شک کردم اینکه آسمون همه جای رنگه میخوام ببینم حسین واقعیه مثلا ما اینجا عکس میگیریم اونجا واقعا یه جور دیگه است یا اینکه تو ایرانم بستگی داره کجا عکس بگیری مثلا تو اگه بری یه جایی که هوا آلوده نیست خب آسمون همون رنگه ایرانم خوب کشه. به طرف اون عکسی که من تو اینستاگرام میبینم فیلتر هم نداره و خیلی فرق می‌کنه شما اگه برید همون شمال خودمون یا جنوب خودمون یا مرکز ایران جاهایی که آلودگی هوا نیست، میتونید شب پر ستاره ببینی، آسمون آبی در طول روز ببینی. از این نظر فرقی نمیکنه خب که ولی خب شهرهای آلوده مثل تهران رو نمیدونم تبریز و اصفهان و اینا قاعدتا شما آسممون رو در بیشتر روزایی سال شاید یا نصف روزایی سال نبینیم اگه منظورت رنگ آسمونه ولی آسمون از یه بابت همه جا هم یه رنگ و اون زمانیه که میخوای بین آدما زندگی بکنید دیگه وقتی یه ما دوم آسه ما, ما شش ما یه سال بین آادما زندگی میکنیم می, می که دینامیک روابط بین انسانی تقریبا همه جای دنیا یک, یک شکل یه جوره. واقعاً این هست به نظر تو تو آلمان بودین اون روابطتون با آدمای که تو آلمان بودن با این آدمایی که تو بلغارستانه ببین از یه سطحی عمیق‌تر که بشه یه جوره. در روزای اول هفته‌های اول شاید یه جوری نیه. یه جور نیست ولی از یه جایی به بعد یه جور میشه اون مسائل عمده روابط انسانی که رو رضیعت میکنه. حجم امدهش خیلی خیلی مشابهه یعنی مثلا 80 90 درصدش یه یه بدبختیه اگه من میخوام از بود منفی بگم این به نظر من خیلی جالب باشه اینکه تفاوتات چی بودن چون به نظرم در حالت شرط جغرافیایی یه تفاوت بنیادی می تو آدم‌ها به وجود میارن یه نفر تو کبیر کلن یه مثلا یه قومی که کلن تو کبیر بوده با یه قومی که اروپا تو را می‌رفته روتخونه و درخت و غذا بوده یعنی به نظرم مثل تفاوت‌هاش هم به وجود آورده باشه توی زود شما به وجود آورده ولی اونا بنیادی نیستن من حداقل عقیده من اینه تش... شابه... تشاب... تشابه ها تچ ها شباهت شباهت خیلی خیلی بیشتره بنیادی اون قسمت دیگه اینکه کسی که آخر مثلا من که تو ایران هستم نیر هم هستش که من نیدم خارجی تو الان با خارجی مناد دستم گم میکنه <تصفح> وای خارجی من احساس میکنم از سیاره دیگه بر همین این حس ببین شاید واقعا منم قبل از اینکه با خارجی یا زندگی بکنم یا با کسایی که ایرانی نیستن چون خارجی خودش کلمه بار عجیبی داره مض با کسایی که ایرانی نیستن قبل از اینکه زندگی بکنم شاید واقعا منم همچین حس و برداشتی داشتم. ولی خیلی زود تغییر میکنه یعنی فقط کافیه که یکی دو هفته با یه نف... با چند نفر یا دو نفر که ایرانی نیستن زندگی بکنی و خیلی سریع میفهمی که واقعاش فرقی نمی یعنی همه آدم دیگه و اون میزان تشابه ها خیلی خیلی بیشتر از تفاوت است. حالا اگه شد تو قسمت بعد بیشتر راجعه هم موضوع صحبت میکنم تجربه که شما داشتید در حالون الان میتونیم وقت مناسبه که دیگه جمع بندی بکنیم این قسمت من فکر میکنم که معرفی نسبتاً بدی نبود برای یه پادکست جدید به نام براه بادیه شاید. شاید یکی از سوالایی که این پادکست جواب میده اینه که من این شعر همیشه دوست داشتم این شعر رو که به راه بادی رفتن به هزنشتن باطل این این چیزی که سعدی ارائه میده و در ادامه توجیه میکنه که اگر مراد نیابم به قدر بست بکوشم ولی در این حال من همیشه این سوال عکس اینم داشتم که لزومند شاید اینجوری نباشه و نشستن باتل بعضی وقتا شاید بهتر از به راه بادیه رفتن باشه. شاید <coughs> یکی از سوالایی که این پادکست بتونه جواب بده اینه که واقعاً به راه بادیه رفتن بهتره یا نشستن باتل بهتره؟ کی آدم باید به راه بادیه بره که باید باتل بشینه و یه سری چیزای دیگه که میتونیم راجعش صحبت بکنیم. ما احساس میکنم حالا دستبندی شدیم شما کسی هست که به راه بادیه رفته من کسی هم باطل نشستم میدونم به هیچ کش منظم نبود میدونم میدونم چی تره بگم یه جوری شد هم همشین نگاهیم بهش داشتش دیگه حالا نمیگم کاملا باطل نشستم ولی شاید اینجوری تو به توییه بهش نگاه کنی مثلا خود من اینجوری نیستش که به طور مطلق تمام روزام حس کنم که دارم به راه بادیه میرم توی هم توی یه روز مودهای مختلفی رو تجربه میکنم حس میکنم که مثلا چند روزه که باتل نشستم بعد توی یه روز امکان داره نصف روز یا چند ساعت تو مود به راه بادیه باشم چند ساعت دیگه اش مود نشاستن باتل داشته باشم یا مود دیگه‌ای که حالا شاید تو هیچ کدوم از این دو تا مود نگونجه در حال امیدوارم اتفاقات خوبی توش بیافته چ میدونید برای من مچیک هستشه که فرصتی میتونه باشه برای اینکه اب م... از ابعاد مختلف بتونم به یه موضوعات مسئله که پیش پیشمده نگاه بکنم چیزی که ما خیلی کم داریم به نظر من هم تجربه کردن هم صحبت کردن رژ به آترناتیو های مختلفه یعنی آقا شاید یه زمان اگه یه نفر بهدهگه هی مثلا از اینور میتونی بری من چند وقت پیش میگفتم من جالبه من تو چت نمیتونستم میشه با دختر رو چت کرد تا مدت وقتی بچه بودم واقعا دارم میگم یعنی مثلا بود. من فقط میشستم با علی و رضا و من باید چت میکردن منه بچه کوچولو. باید زمانی میدم میشه مثلا اصلا کل دلیل و مفهوم پیدایش این موضوع اینه که تو بتونی یه نفر دیگر رو بگردی پیدا بکنی اگه خب این بدهی این موضوع اما یه نفر بود این رو شادت خیلی ساریدم انقدر بختم عدل نمیدادم رو روی زندگی بقیه بشنم گوش بدم به حرفاشو بعد خیلی احساس میکنم هدف برای اینترنت بود هدف برای من یه نفر نبود نه امداد بهم میگه که این است این هدف یه ای چیز دیگه است حالا <تصفح> <تصفح> شاید <شبت تصفح> صحبت <تصفح> کردن بتونه کمک بکنه ما از ابعاد مختلف به این موضوع نگاه بکنیم میشه چالش توی دستمون بیادش اوکی آقا خیلی عالی یه،, یه چیز دیگه که شاید من فکر میکنم یکی از دلایل این بود که رسیدیم به این این پادکست رو تولید بکنیم این بود که همیشه سفر یه چیز خیلی لاکژری و گرون قیمتیه که منابش رو هرکسی نداره به خصوص سفر خارج از ایران و من زمانی که این رو به عنوان یکی از گزینه‌های های کتاب امکان نوشتم خیلی از فیدبک هایی که گرفتن این بود که خب این پول میخواد و یه آدمی که 18 سالشه و پول نداره کار نداره نمیتونه سفر بکنه این, این یه توهمی بیش نیستش که شما به یه گزینه ارائه دادید ولی الان میبینم که این حداقل این مدلی که به وجود اومده و هزاران نفر توی دنیا دارن به ده ها کشور سفر میکنن با کمترین هزینه خیلی خیلی کار رو راحت و کم هزینه میکنه واقعا پول زیادی نمیخواد که شما به یک کشور دیگری بری و اونجا زندگی مردم اونجا رو تجربه بکنی بدور از جاهای توریستی که شما باید بری یه هتلی بمونی از چه میدونم چهار تا آثار باستانی و تاریخی عکس بگیری و روی اینستاگرام بذاری میتونی تو متن و بطن یه جامعی بری زندگی و فرهنگ و مردم رو تجربه بکنی غذاشون رو بخوری قضا پختنشون رو بگیری چه میدونم خونه رو ببینی معاشرتشون رو مهمونی گرفتنشون رو از نزدیک تجربه بکنی هر کاری که میکنن کنن مراسمشونو رو مراسمشون رو ببینی مثلا دیروز یک یه مهمونی بود یه جشنی بود به نام سن جورج که مقارنه با روز کشاورز اینجا هست و روز مهمیه برای کشاورزا این روز رو جشن میگیرن و گوشت بریان شده یا حالا هر حیوانه که دیگه که دارن رو میخورن به امید برکت در طول اون سال ما اینجا یه بوزی رو چند روز پیش کشتیم یا قربانی کردیم یا سلاخی کردیم و گوشتش رو دیروز توی تنور هیزومی که اینجا دارن پختن یا بریان کردن که من همچی چیزی تو به اون نخورده بودم خیلی خوشمزه بود از اون جالبتر برنجی بود که درست کردن شبیه کوکو توی مایتابه ولاش دلوجگر و سیرابیه این بوزر رو خیلی ریز خورد کرده بودن و گذاشته بودن یعنی واقعا میشود گفت سنگین ترین کوکوی بود که یه آدم میتونه بخوره از لحاظ مغزی بودن این مثلا مهمونی دیشب ما بود ها حضرتون چرا شده تا الان سوال جالبیه بپرس... که میپرسی ببین من چهار ماه خوردهیه که از ایران اومدم بیرون منهای... اگر بخوام با بلیت اولی که خریدم چون به حال بیلیت از ایران به بیرون از ایران معمولا خیلی ایران من یه میلیون تومن پول بیلیتم به آلمان بود به... از تهران به برلین اکی اه... سرگاه الان فکرم موقع فضا دادن به سگاسی خیلی هایجان زده میشن یه تو من ریال به اضافه حدودن 300 یورو چهار ماه و یک هفته است دقیقا آه آه، یعنی الان کل هزینه یه میلیون تو هم بلا به یه ملیون که حالا بل فرست یا با 300 یورو اضافه 300 یورو این کل هزینه من توی این مدت بوده ریزش هم اگر میتونم یه اکسل به اه... اه... کانال پادکستمون نتش بکنیم بعد چند کلیو لاغر شدید؟ <تصفيق> من فکر کنم اینجا دارم شوها رو خیلی دارم غذا میخورم اینجا برای توی آلمان لاغر شدم توی آلمان غذام کم بود دیگه رفتی محبت انتظار هم غذا گیاهی بود همین که به شام یعنی فقط صبحونه و نهار بود شام دیگه هرچی اضافه بود و میخوردیم یا مثلا یه نونو کرهی مثلا اهه سه ست یارو ها سه ست یارو از کشور و میدونم فکره اما بابا خیلی شما بعدشون بیاد چرا؟ چرا؟ این یه همچین رو معرفی میکنین هی مثلا وو این کار رو میتونه بکنی به که پاش برید همچین گای همچین کاری بکنی همچین فضایی یه همچین چیزی هم هستش که میتونه با همچین انجامش بدی تو دجایی کردی من من آ او این پیچوندین چیزا میدونی این یعنی اومدم حمله کنم یهو زده حمله خوردم من واقعا نمیدونم فکر نکنم تو که سن نصفه گذشته و فکر خیلی جوونی نه این اما راجمی سالی که پرسیدی دارم میگم یه مقدار من شاید بترسم راستش رو یعنی این مسئله برای من اینکه این همه پارامترهای ناشناخته و نامکشوف و مجهول وجود داره برای من ترسنا که تایی چه پارامتری مثلا تو رو میترس چه پارامتری؟ این که کجا قرار میگیری با کیایی چقدر به ما جرجی برای اصلا دیدی که من دارم مثل این فیلم ها نیستش که مثلا بریم یه همشین کاری انجام ماجرجی برای من مثل این فیلم ترس میشه بیشه که بریم یه کاری انجام بدیم بعد یه نفر میفته سر همه و اونو میبره بیشتر تصورم از ماجرجی فیلم ترس ناکاستا. فیلم های هیجان انگیزی که یا اتفاقات هیجان انگیزی که من این وچه تمایوزش که هیجان چیه من نفهمیدم نفهم؟ ن یه زمان طرف میدونی ماجر میگن آره برو مثلا دیگه آهنگ خیلی زیبایی گذاشته میشه رو فیلم طرف رفته زیبایی های طبیعت میگیرته بد بعد میفهمه چقدر زندگی زیباست یه زمان دیگه مثلا 127 ساعته طرف اه. رفته تو کوه داره میگره یه همه سلمان با دستش رو قطب بکنه چاید من دیدگاه هم به ماجر بیشتری همچین چیزی باشه تو اون حالت زیبایی که آره تو تو تو شخصا نمیخوای به راه بادی بری. به راهبادی رفتن لوسمنی که میری کشور افغانستان به <تصفيق> نظرم این نیست. <تصفيق> مثلا کلا مثلا بری یه جایی حتی تو ایران مثلا یه مدتی داوطلبی کار بکنی خارج از سیستم کپیتالیستی که یه شغلی تعریف میشه و تو یه کاری میکنی مثلا 8 ساعت در روز بابتش یه حقوقی میگیری تفاوت عمده بین این دو تا دنیای نه. یه دنیایی هست که شما شغل داری، ام. جاب داری. هشت ساعت کار کنی و بابتش حقوقی میگیری تفاوت این یکی دنیا این ویزاگیش اینه که شما یه می میکنی که گره خورده به زندگی میزبانت یک کار مشخصی نیست یه مشتری به از خود میزبان نداره مثلا شما کف شلید نمی‌کنی که میزوانت یه جای دیگه بفروشه لزومن 8 ساعت کار کنی و بعدم حقوقی در کار نیست این زندگی رو تو میتونید داخل ایران داشته باشی؟ لزومی نگه از ایران خارج بشی به مم. یه کشور خاصی مثلا بلغارستان رفتن توی کشور دیگه با یه همچین چیزی که من شاید خیلی نتونم الان بپذیرم. نمیدونم شاید تو موقعیتش قرار بگیرم برام مقدور بشه یعنی انجامش بدم ولی بذار در مورد ایران من خیلی مافرا من خیلی دوست دارم برام جای مختلف ایران. شاید هم بشه مرحله به مرحله پله به پله برام میبینم موضوع رو. یعنی میدونی آقا بذار اول تو ایران ببینیم چه همچین کاری انجام داد. بعد شد چون به نظرم ما همون که ترسی داریم اون سیستمی که بزرگ شده ما یه آدمای شجاعی بار نیاورد خیلی. ما آدمایی که آقا جو کلاس اول کلاس دوم ترم یک ترم دو یه قالب و چارچوبی همیشه برامون تعیین شده. حالا اینکه بخوای اینا رو بذاری کنار چه زمانی بهتر از الان که فرافکنی کنیم همه ترسامون رو به سیستم و سازمانش کنیم سیستمی رو که در گذشته ما رو به این روز دوچار کرده. ای سیستم، ماردتو. در تو سیستم بزدوک میشی من چی بگم راجع بهش؟ یه حقیقتیه. حقیقتی آره. ولی خب بنویم هم تو سیستم رو سرزنش میکنی یعنی یه، یعنی یه کاریه. به نظر میاد که یه کاری رو دوست داری بکنی ولی میترسی بکنی. و این ترس تو میندازه گردن سیستمی که دقیقاً هم مشخص نیست عناصرش و الماناش چیا بودن و هستن من یه زمانی مثلا بگم برای نظام آموزشی مدل یه نظر خانواده است یا مبدا فرهنگی یا نظام دولت برای چی خوندم برای المپیاد شیمی می‌خواستم بخونم من خیلی به شیمی علاقه‌مند شدم شروع کردم خوندم بعد آقای ناظمم من قشنگ یادم به من گیر داد که چرا درساتو نمی‌خونی چیه وقت‌گذرونی روی المپیاد شیمی و این چیزا یا یا یه برنامه دیگه بودهش ما شرکت میکردیم داخلش سال بعد سمیرا یک سال هم توی اون برنامه قبول شده بعد بعد یه مدتی نرفت بهش گفتم چرا نمیری گفت به خاطر اینکه با آزمونه جمعه قلمچیم این تداخل داشتش تو این برنامه مثلا من <تصفيق> من توی برنامه که بهترین دوستان پیدا کردم توی این برنامه فهمیدم کامپیوتر علاقه دارم بعدا میرم یه نفر این به اینکه با قلمچیای آزمونه کنکور جمعهش تداخل داشته اینو بی شد خویا همینش موضوعیه آدم وقتی میبینه باشون رو میشه به تدریج اینکه بخوای یه جور دیگه بر کار بکنی الان برای که ما واقعا بخوریم زمین خوردیم زمین زمین خوردن تو ایران خیلی موضوع سنگینی اگه خانوادهات پوشت نباشه بخورزنه واقعا امکانش هست که ولاد نشه بیخیال بیخیال چه با یه اپیزود اختصاص بدیم به خوردن زمین در ایران آره که یه اون زمین چی میشه هم میتونه موضوع جالبه باشه آره بابا بابا من میگم یالو تحصیلگی ارش و فروخته که بتونه بیاد بلغارستان از ایرلند خب ما جامعه هستیم نمیدونم همین که ما الان دلار ذخیره میکنیم تو خونه ها میریم زمین میخریم جاهای مختلفی مثلا خیلی خوب نشون میده که ما کلا یه ترسی از که تو که تو دو هزار سال پیش خوردیم زمین حالا به شکل ملی <تصفح> yeah. و نه اصلا در نه هست منتقلش میکنه این احتمالا هستش شاید هم برگرد به همون قضیه جغرافی های ما یه جای بدیم که جغرافی همون جغرافی کبیری بوده طرف اگه تو کبیری تو چه هم میتونی دوان بیاری تو اروپا گفتم طرف اصلا ویل میکرده میرفته همه جای روتونه بوده این همه کشوری این همه فقط ما کبیر دار جالب میشه مثلا میریم ما یه عربستانی این صحبت رو کنیم دو ست تا کشور بعدی احتمالا من یه کشور کبیری برم میتونیم <تبا تبا صحیح> آره اون, so اون جالب میشه اگه واقعا من <تبا> مشکل جنگل و کبیر و ایناست تو <تبا دانید اونبال یه بحانه میگردی بحانم <تباید> دارم سروازی از سیستم رسیدی به کبیر <كبير> ولی سربازی خیلی وحانی بهتری به نظرم من پاسپورت ندارم نمیتونم از ایران برم بینید استفاقا به نظرم سربازی دم دست کار دافتر لبانیه که میکنی هم خدمت به کشور و هم بابتش پوری دریافت نمیکنی و هم خیلی کار مشخصی اونجا تعریف نشده من اون موقعی که سربازی میرفتم این چیزا رو نمیدونستم بنابراین خیلی منفیتر بهش نگاه کردم. ولی تو میتونی بدید به همانی کار دافتالبی بهش نگاه بکنی یه کار دافتالبی میگه کار دافتالبی رو قبول میکنی که آقا از اسم دافتالبانه بودن روشه که آقا من داوطلب شدم این کار انجام بدم منطق خب این خدمت اجواری سربازیه نمیدید اگه خدمت دافتالبانه خب نگاه کرده نمیدید خیلی چیزا یه جور دیگه نگاه کنم نمیدید روزی چند بار به خودت تکرار کنی که من ذافت لهوانی دارم این کارو میکنم حداقل هضمش برات راحت‌تر میشه برای من که من به شخصه خیلی مشکلی ندارم یعنی منم هم یه همچین نگاهی دارم که یه مدتی میری یه جور دیگه از همه چی فرق میکنه ولی یکم زمانش طولانی راستش بخوام به خصوص من این کرشم کامپیوتره بعد دو سال تقریبا دیگه ابزولیت میشه تو حوزه کامپیوتر تا یه تو که زرنگی کردیم این زمان رو به حد اقل رسونم دارم بیاد کاری <تصفيق> میکنم ببینم چی چی میشه تو الان سروازی چقدر شده؟ تو الان که من یه دنه پروژه نه رو من انجام دادم دیگه یه پروژه نه مهار رو انجام دادم درم روی پروژه دیگه یه امکان آره آره آره حالا تا ببینم چطوری میشه همی همیزوان بز بزن... که در میری امکان تو طور بسه صفر برسونید یعنی همونم سربازی انجام ندید فقط همون آموزشی رو انجام بدید خیلی اما اگر داره ولی در عرار حتی هم بگم او این دیده خیلی مهمه واسه این که من توی همچین فضای قرار بگم باید همچین آدمای کار بکنم اینم خودش واقعا تجربه جالب و جذابی بودش چجور در عرار؟ والا که سر کار کفش نمی پوشم دن پا بهمی زنی خیلی راحت میشه باشه شرطا قرارو کرد من خود خیلی تنچومت نبود اما ببینید کاری چقدر قشن با هم صحبت میکنید اوکی همین چیزه آره تجربه خوبه در هر حال میتونیم برای اینکه این, این اپیزود خیلی طولانی نشه اه. آه، چون هر کدوم اینا از نظر من خیلی با جای صحبت کنیم <تصفيق> من خیلی دوست دارم بدونم که کجای این تجربه کار با آدمایی که دم پای میپوشن سر کار برات بوده <تصفيق> تو فقط توی یه جمله خلاصش کردی فقط دمپایی میکنشم خطر توی دو جالب دیگه یه هم تو دیدی م. و من سعی میکنم نذارم ازش اینش <تصفح> آره حالا بعدا میتونیم رو صحبت دو خواهیم اگه این پاڈکست که این قسمت اولش رو زبت گردیم اگر کسی بخواد با ما در ارتباط باشه چجوری میتونه؟ من من یه پادکست 822 داشتم که شماری آپارتمانی بود که درش زندگی کردم. من فکرم اونو اسمشو عوض بکنم به خاطر اینکه کانال تلگرام دارم که 80 نفر هنوز توش هی میگن که کی پادکست جدید میدید و بعدم وبلاگم و یه میلینگ لیستی که اونجاست ولی خب اگر کسی بخواد چیزی بگه ما میتونیم یه ایمیل داشته باشیم یا چه, چه روشی خوبه که کسی بخواد با ما در ارتباط باشه به نظرم ایمیل هست اگر بتونیم یه بات تلگرامی داشته باشیم و تلگرام بچه در تماس باشن علاقه بر این تو توییتر هم شد تلگرام الان فیلتره آره اوكی. آره ولی بعضی افراد هستن که داخلش هستن آره. ایمیل هم میتونیم داشته باشیم. ایمیل چند تا اشخاصه و تو توییتر بنظرم نظر من بین در حال حاضر نکته خاصی که هیچ شبکه اجتماعی فیلتر نشده ما نظر می یعنی قرار باشه اجتماعی شکل بگیره <تصح> ولی خودش فیلتر شده نیست دیگه ایمیل فیلتر شده نیست آره ایمیل میتونه بشه بلاگ منم اگر مثلا من دیگه اپیزود اونجا رو یه شو... من به عنوان مطلب منتشر کنم اونجا هر کسی میتونه کامنت بده مگر اینکه بعد از این قسمت وبلاگ منم <تصح> ف... فیلتر بشه نمی چیزی فیلتر فاول فیلتری ما گفتیم تا اینجا من نمیدانم فکر نکنم خیلی مورد چطورتی من خودم و گونه وابستگی به موبونت حریکیشنا مبروه کردم فعالیت هاتون رو داخل این من هیچ وابستگی به جز یک ماه کار دافتر لبانه اونجا در آشپزخانه نداشتم زرخ روستم بوده اونم حالا ما یومل فعال میکنیم ببلاگ من شما هم هستش دیگه احساس میکنم یعنی طبقه تماس بگیره از این طریق بتونه تلگرام هم هست اگر کسی هنوز بتونه بهش دسترسی داشته باشه امه. اگر کسی سوالی چیزی داشته باشه جواب بهش میدیم توی قسمت بنت <تصفيق> آره به خیلی میتونه موضوع جالب باشه که پرسش و پاسخ باشه یعنی اگر کسی سوالی داره یا میخواد راجع به صحبت بشه به نظرم بتونه بفرسته اون صحبت بکنه تو با توجه به اینکه یه پادکستر خوب خیلی بزرگتری نسبت به من هستی و چند هزار نفر فالوئر داری چه پیشنهادی داری برای جمع کردن این پادکست در آخر سر یعنی الان چطوری جمعش بکنیم؟ و چی میخوای به بخوان... بشن... خاننده ها به شنمنده ها بگی در, در حضات آخر اولین فیسود پادکسته برای بادیه چی میخوام بگم؟ شاید بشه به این بگیم که میدونید من اینکه بتونم به تجربه ها صحبت بکنم به که یه جور دیگه نگاه بکنیم این بر من خیلی ارزشه من آدم خیلی اه. وربال فکر میکنم میدونید من تو حرف زدن خیلی فکر میکنم اه. و اینکه امیدوارم بتونم با توجه تناقضات بسیار زیادی که من شما داریم تو خیلی از حوزه ها امیدوارم یه چالشه‌ای به وجود بیاره که صحبت کردن راجبهش برای شنونده‌ها شنیدنی باشه نه امیدوارم دنبال بکنن و اگه نظری چیزی دارن اگه حرفی دارن اگه سوالی دارن ما ما درمیون بذار این تناقضات خیلی تو من تو قسمت بدگی آدم یادم ازت میپرسم که چیازشون فیلن به جز سن چیزی نمینم به ما همه تو قسمت قبل منو انگزدیم به اینکه تو راه بادی برو نیستی تینه رو قبل داشتم اینجا تناقض نیست منم نبودم منم اتفاقی اومدم نه میدونی تناقش مثلا تو چیز نهایی مقدار شاید تو منش بشه علازه... یعنی علاوز یعنی جفتمون داریم یه چیز رو نگاه میکنیم آن اما دوتا زاویه مختلف دیدگاه های مختلفی زده جماله قطعا. قطعا آره, آره من احساس یه همچین موضوعی آره. باشه امیدوان دیدگاه های مختلف چند نفر شنواندم به این به این پادکست یه قنای بهتری بده یا بیشتری بده آره اون نکته هم که اص الان من پیشش به تن خودم مادیدم دیگه من سعی میکنم تا جایی که میشه واقعی باشم شما میدونم واقع هستین خودمونی باشم شما دونم خودمونی هستین و این موضوعیه که خیلی کمه تو جامعه ما آدمایی که واقعا خودشون باشن ترسشون بگن میترسین ما یه پادکست روش می‌دنم ترو استوری هر کس میاد و از اتفاقایی که براش افتاده از ترسی که داره از مشکلاتی که براش پیش اومده میگه ما همانه هی احساس میکنم اگه یه همیشه حرف به مطرح بشه بعداً مچمو می‌گیرن بعداً برام دردسر میشه بعداً فلان میشه در حالی که همین مطرح نکردن این موضوع به نظرم باعث میشه خیلی از هم دیگه فاصله بگیرن. فکر کنم تجربه‌ای که ما داریم خیلی یونیک، خیلی خاصه. من خیلی استثنایی. در که جلو رفتن صحبت کردن ازشون فنگ بفهمم آقا یه نفردی هم مثل من هستی، مشکلاتو داره. یه نفریام مثل من هست، من از این موضوع میترسه این شاید باعث بشه هم یه قوت قلبی باشه، هم اینکه که باعث خودمونم خودمون ابراز کنیم. تو به که غیر مستقیمی داری از تو خودم تعریف میکنم جدی؟ نه این قسمت از مارکتینگ پاکستم من نواد بهش اشاره میکنم چون اولا مارکتینگ تو رو خراب کردم ولی سعی میکنم از قسمت های بد دلیل اینم که تو من از خود مارکتینگ باقی بشنگان کرده بودم ولی مارکتینگ خوبی بود تو ویشگی های مثبت این پاکست رو برجست کرد من بیشتر از این که آدمیم باشم اصابانی من میشم به این آقا وقتی طرف میاد میگه توی برای مصاحبه وقتی راجعه به صحبت بکنن که تاله عاشق شده یا نه یعنی که چند ساله ته خواهی نو فقط دقدر من نیسته به موضوعی نیست که من راجعه بهش مثلا بخوام بدونم اه. همه میخوان متشن خسانه صحبت بکنن همه میخوان یه مقدار درداری تو چیه این فضای بازه من نظرم. دانی که آقا جون بتونیم راحتتر با همدیگه ارتباط برقرار بکنیم من شنیدن از آدمها برام جالبه این که آقا بدونن بیا نفر دیگه هستش مثل من بتونم باهاش ارتباط برقرار باش صحبت داستانش داستاناشو بشنوم، من شنیدم داستان لذت‌بخش آره آره آره این دردی منم هست علی بابا تناقضات من یه مشترک یه بحث خیلی بیشتر از اونی که قرار بود صحبت کنیم صحبت کردیم بسیار عالی خیلی ممنون آرش مرسی از شما آقا اه ف... اه فک... یه چیزی دیگه میادمون رفت که احتمالا این پادکست هر دو هفته یک بار خواهد بود حدودا و بنابراین اگر شنونده ها دو... خوششون بیاد و بخوان پادکست بعدی رو منتظرش باشن حدودا دو هفته از انتشار پادکست اول به بعد پادکست شماره بعد بیرون خواهد اومد درسته؟ تلاش ما خواهد بود؟ حالا چند روز این برمان آه. خیلی حالی امودوارم سواله بیادش میدونه خیلی من بهش نگاه نمیکردم اما حالا که دارم بیشتر بهش نگاه میکنم میتونه خیلی جالب باشه تمام بشه تر باشه بسیار حالی پس اگر اگر به این پادکست رو اینجا گوش کردید من از طرف خودم از شما تشکر می کنم امیدوارم که به شماره های بعدی پادکست هم گوش بدین اگر هم چیزی می بگین یا من سوالی بپرسین یا به نوعی در بحث ما شرکت بکنین حتما برای ما پیام بفرستین و تا قسمت بعد من خداافظی می کنم. اگه تا اینجا پادکست رو گوش شده خیلی اون جالبی اصلا خیلی دوست دارم بدونم دی تتر زندگی چیه واقعاً چی پ کردی یعنی؟ يعني... خب همون زمانی که طرف میتونه بشینه گیم آوت و فرندز و فیلم و سریال می و میتونه بره تو اکسپلور اینستاگرام اسکرول بکنه پایین چیزای بی نگاه کنه این که وقت گذاشت تا اینجا اینو گوش واقعا باعث میشه به نظرم آدم جالبی میاد من خداfizik تر از بودم میتونم چیزی بگم نه والله راحت اینو موضوع مطرح کردم واقعا <laughs> اینکه چی شد و دلیل اینکه تو آخر این پادکست رو گوش کردینم برای ما میتونیم بنویسیم و ما چه مود چه دارین چه مشکلی دارین چه کجای زندگیتون خالیه که چه گپی در زندگیتون وجود نداره که این پادکست رو تو آخر گوش کردیم ما فلسفی صدامون واقعا در این حد من در این حد نبود موتا این واقعا دارم میگم این یه موضوع واقعی که همین وقتی که الان این طرف بذاشه این پادکست رو گوشتاده تو دنیایی که سرشار از فیلم و سریال و اتفاق و حادثه و خبره اینکه یه نفر یک ست وقتشو میساره سرشار از کانتنت آره سرشار از کانتنت اینکه طرف انتخاب کرده این وقت بذاره اینجا واقعا نیم. نظرم اینه که آدم جالبی این هستی، منم پس خداافظی میکنم کنم امیدوار رو قسمتی بدن باشه این قسمت باید بهتر باشه قسمت باید بیشتر بفهمیم داریمشکار می میکنیم، چه اتفاقی داره میافته به راه بادی است. از, بله. از راه بادی خداافه <تصفح> ب... به راه بادی شروع کردیم باید از راه بادی خداافظی کنیمعتون بگیم به راه بادی خداافه. از تو از یک جایی خداافظی میکنی کنیم. این... این زبان فارسی دیگه از طرفم از طرف خودم خداحافظ از راه بادی خداحافظ آقا من راه بادی من اصلا کنم اگه به بادی رسیده باشی بعد اینطوری خدافظی بکنی خب تو تو میتونید هرجوری میخواهید خدافظی کنید من من از راه بادی خدافظی می‌کنم خدا. خدا. من از شما خدافظی می‌کنم از دوستان شنبهنده خدافظی می‌کنم من خیلی ترجیح میدم این حس خودم رو حفظ بکنم رسیشو بخواید اگری <تص> چیز دیگه ای کلامی نشم من <laughs> <im> <im> <im> <im> <im> <im> <im> <im>